سرک که شاور سلام امیدوارم که حالتون خوب باشه در سالگرد نهم نوین الماس افتخار همکاری برای بنده وجود داره با شما انشالله که همینطور که تو این یک سال و اندی تلاش کردین برای بهتر شدن و بهتر کردن مجموعه همچنان این تلاش رو ادامه بدین میخوام بدونین که این تلاش ها داره دیده میشه و بنده شاهد این تلاش ها هستم و امیدوارم هر روز بهتر از روزهای قبل باشین و افتخار همکاری با شما تا سال های سال برای بنده و مجموعی نوین انماس باشه در کنار همسر گلتون روزهای خوب رو تجربه کنین موفق و پیروز باشید.